سیستم بعدی سیستم ازولانی اسکلتی هست. تغییرات هورمونی که در روند بارداری اتفاق میفته تغییرات زیادی رو در سیستم ازولانی اسکلتی مادر باردار ایجاد میکن. استروژن زمینه را برای عمل کرده ریلکسین آماده میکنه. ریلکسین هم از هفته دوم بارداری ترش میشه و در سه اول به حد میزان خودش میرسه. بعد از اون تقریباً 50 درصد، کاهش پیدا میکنه و تا زمان زایمان هم در همین حد باقی میمونه ریلکسین ترکیب کلاژن رو در کپسول های مفسلی بافت ها های یا همون رباط ها عضلات شکمی مادر و ازولات کف لگن مادر ایجاد میکنه و همین تغییر باعث میشه که الاستیسیته و قابلیت ارتجاع در مفاصل رباط ها و عضلات تغییر پیدا بکنه مفاصل شر میشن، ازولات شل میشن و زمینه رو برای بزرگ شدن رحم در داخل شکم فراهم میکن. اما فقط ازولات شکم نیستند که شل میشن همه ازولات در بدن مادر باردار شل میشن علاوه بر این مفاصل هم نسبت به قبل از بارداری کمی شلتر میشن. این شل شدن مفاصل به تدریج بعد از زایمان کاهش پیدا میکنه ولی گاهن تا شش ماه بعد از زایمان به طول می انجامه. اصلی ترین مفصلی که تحت تاثیر لکسین قرار میگیره مفصل لگن هستش. لگن در زنان غیر باردار بیتهرکک است. اما در زنان باردار تحت تاثیر هورمون ریلکسین قابلیت تحرک پیدا میکنه تا بتونه لگن رو یا به عبارت بهتر کانال زایمان رو برای عبور جنین آماده و مهیا بکنه شلشدگی که در مفاصل بدن مادر باردار اتفاق میفته همونطور که خدمتتون گفتم در کلیه مفاصل اتفاق میافته. و مفاصلی که وزن بدن مادر را تحمل می‌کنند در معرض خطر آسیب هستند. حتی گاهن دیده شده به دلیل شل شدگی که در های پا اتفاق می‌افته، پیچ خوردگی در پاهای مادر باردار بیشتر میشه و علاوه بر این به دنبال اضافه وزنی که در روند بارداری در بدن مادر باردار اتفاق می‌افته، مادر از درد و ناراحتی در پاهاش شکایت داره و دوچاره ممکن هست مشکلاتی در حرکت هم بشه. با بزرگ شدن شکم مادر در طی بارداری مرکز سقل بدنمون هم تغییر میکنه و به جلو میاد. و همین ام باعث میشه که وضعیت ایستادن مادر باردار تغییر میکنه. بنابراین حالت بدن مادر بستگی به قدرت عضلات، اضافه وزن شل شدن مفاصل خستگی و وضعیت قرارگیری مادر در روند بارداری داره وضعیت بده ایستادن و قرار گرفتن مادر در حالت نشسته و حتی گاهن خوابیده باعث میشه که فشار زیادی به ستون فقرات مادر بیاد و باعث بشه که مادر دردهای رو در ناحیه پشت به ویژه در قسمتهای پایینی پشت احساس بکن که این مشکلات را معمولاً مادران بین ماه های چهار تا نه بارداری دارند و گاهن تا دوازده هفته بعد از زایمان هم باقی میمونه. حالت نادرست قرارگیری بدن مادر باعث میشه که مادر یک خستگی مضاعفی را در ستون مهراهاش، لگنش و پاهاش احساس بکن. و واقعیت این هستش که واقعا بزرگ شدن شکم باعث ایجاد درد پشت نمیشه. بلکه تغییرات هرمونی و وضعیت غلط قرارگیری مادر در حالت ایستاده و نشسته باعث ایجاد درد میشه. اما در هم درد رو بیشتر در باستنها، رانها و پایین پاهاش درک میکنه و گاهی این درد انقدر شدید هست که ممکن هستش با پیشرفت بارداری مادر رو از انجام فعالیتهای روزمره باز بداره. در روند بارداری ازولات دیواره شکم هم باید شل بشن تا اجازه بدن رحم رشد پیدا بکنه. در نتیجه کشش قابل توجهی در عضلات دیواره شکم اتفاق میفته که این در بارداری اول خیلی بیشتر هستش نسبت به حاملگی های بعد خاطر همین هست که مادر ممکن هستش که احساس کشش و دردی رو در ناحیه پایین شکم خودش داشته باشه رحم در حال روش به سایر احشاء داخل شکم مادر هم فشار وارد میکنه از جمله مسانه به همین دلیل ممکن هستش که مادر دچار علائم ادراری مانند تکرار ادرار و گاهن بی اختیاری ادرار بشه